مصنویه، مانویه، مولوی. برنامه یکصدو هفده هم تفسیر از فلسفه لینا. الا آمنو و عملو السالحات فلهم اجر غیر ممنونن لیک گر باشد طبیبش نور حق نیست از و تبع نقصان و دق سستی او هست چون سستی مست کندران سستیش رشک رستم است گربی میرد استخانش غرق زوق زره زررش در شعاع نور شوق وان که آنش نیست باغ بی که خزانش میکند، کند زیر و زبر گل نماند، خوارها ماند سیاه زرد و بی مغز آمده چون تل کاه تا چه زلت کرد آن باغ ای خدا که از او این هله ها گردد جدا خیشتن را دید و دید خیشتن زهر قطال است هین ای ممتحن. شاهد که از عشق او عالم گریست عالمش می راند از خود جرم چیست جرم آنکه زیور آریه است کرد دعوا کینهلل ملک من است واستانیم آنکه تا داند یقین خرمنان ماست خوبان دانچین. تا بداند کانهلل آریه بود پرتوی بود آن ز خورشید وجود آن جمال و قدرت و فضل و هنر زافتاب حسم کرد این سو سفر باز می گردند چون ها نور آن خورشید زین دیوارها پرتب خورشید شد وا جایگاه ماند هر دیوار تاریک و سیاه آنکه کرد او در رخ خوباند دنگ نور خورشید است از شیشه سرنگ شیشه های رنگ رنگ آن نور را می نمایند این چنین رنگین به ما چون نماند شیشه‌های رنگ رنگ نوره بیرنگت کند آنگاه دنگ خویکن بی شیشه دیدن نور را تا چو شیشه بشکند نبود اما خانه ای با دانش آموخته در چراغ غیر چشم فروخته او چراغ خیش برباید که تا تو بدانی مستعیری نی فتا. گر تو کردی شکر و سعی مجتهد، غم مخور که ست چنان بازت دهد. ور نکردی شکر اکنون خون گیری. که شدست آن حسن از کافر بری امت الکفران از اعمالهم مالهم امت ال ایمان اصلح بالهم گم شد از شکر خوبی و هنر که دگر هرگز نبیند زن اثر خیشی و بی خیشی و سکر و وداد رفت زنسن که نیاردشن بیاد که از اللع ای کافران جستن کام است از هر کامران جز اهل شکر و اصحاب وفا که مریشان راست دولت در قفا دولت رفته کجا قوت دهد دولت آینده خاصیت دهد ده زین دولت اندر اقرزو تا که صد دولت ببینی پیش رو زین شرب کم کن بهر خیش تا که حوز کوسر یابی بپیش جرعه بر خاک وفا آن کس که ریخت کی تواند سید دولت زوگ و ریخت. خوش کند دلشان که اصلح بالهم رد من بعد توا. انزال هم ای اجل وی ترک غارت ساز ده هرچه بردیزین شکوران بازده وادهت ایشان به نبزیرند آن زانکه که منعم گشتند از رخت جان صوفی ما خرقه ها انداختیم باز نستانیم چون در باختیم ما عوض دیدیم آنگه چون عوض رفت از ما حاجت و حرس و غرض. زاب شور و محلک بیرون شدیم بر رحیق و چشمه که سر زدیم آنچه کردی ای جهان بادیگران بی وفایی و فن و ناز گران بر سرت ریزیم ما بحر جزا که شهیدم آمده اندر غذا تا بدانی که خدای پاک را بندگان هستند پر حمله و مرا صبلت تضویر دنیا برکنند خیمه را بر باروی نصرت زنند این شهیدان باز نوقازی شدند وین اسیران باز بر نصرت زدند سر باز از نیستی که ببین ما را گرکمن نیستی. تا بدانی در عدم خوشید هاست. چه اینجا آفتاب، آنجا سوهاست در عدم هستی برادر چون بود، زد اندر زد چون مکنون بود یخرج الحیه من المیت بدان که ادم آمد امید آبدان مرد کارنده که انبارش تهیست شاد و خوش نه بر امید نیستیست که بروید آن ز سوی نیستی فهم کن گر واقف معنیستی دمبه دم بدم از نیستی تو منتظر که بیابی فهم و زاق آرام و بر نیست دستور گشاد این راز را ورنه بغدادی کنم ابخاز را پس خزانی سنه حق باشد ادم که برارد زو عطاها دم بدم مبده آمد حق و مبده آن بود که برارد فرع بی اصل و سند مثال عالم هست نیست نما و عالم نیست هست نما نیست را بنمود هست و محتشم هست را بنمود بر شکل عدم بهر را پوشید و کف کرداش کار باد را پوشید و بنمودت غبار چون مناره خاک پیچان در هوا خاک از خود چون براید بر اولا خاک را بینی به بالا ای علیل باد را نه جز به تعریف دلیل کف همی بینی روانه هر طرف کف به دریا ندارد منصرف کف به حس بینی و دریا از دلیل فکر پنهان آشکارا قالوقیل نفی را اثبات می پنداشتیم دیده معدوم بینی داشتیم دیده کندر شد پدید کی تواند جز خیال و نیست دید لا جرم سرگشته گشتیم از زلال چون حقیقت شد نهان پیدا خیال این عدم را چون نشاندن در نظر چون نهان کردن حقیقت از بسر، آفرین ای اوستاد باف که نمودی معرزان را دارد صاف ساهران محتاب پیمایند زود پیش و زرگیرند سود سیم بربایند زینگون پیچ پیچ سیم از کف رفته و کرباس هیچ این جهان جادوست ما آن تاجریم که از او محتاب پیموده خریم گز کند کرباس پانسد گز شتاب ساهرانه او زنور ماهتاب چون ستت او سیم عمرت ای رهی سیم شد کرباس نی کیسه قل اعوذت خواند باید کی اهد. هین ز نفاثات افغان و از میدامند می دمند اندر گره آن ساهرات. الغیاف المستقاف از برد و مات. لیک. برخان از زبان فعل نیز که زبان قول سست است ای عزیز در زمانه مرترا سه آن یکی وافی و این دو غدرمند آن یکی یاران و دیگر رخت و مال وان سوم وافی است آن حسنول فرال مال ناید با تو بیرون از قصور یار آید لیک آید تا به گور چون تو را روز عجل آید به پیش یار گوید از زبان حال خیش تا بدین جا باش هم‌راه نیستم بر سر گورت زمانی بیستم فعل تو وافیست زوکن ملتحد که دراید با تو در قعر لحد در تفسیر قول مصطفی علیه السلام پس پیامبر گفت بحر این طریق با وفاتر از عمل نبود رفیق گر بود نیکو ابد یارت شود ور بود بعد در لحد مارد شود این عمل وین کسب در راه صداد کی توان کرد ای پدر بی اوستاد دونترین کسبی که در عالم رود هیچ به ارشاد استاد بود اولش علم است آنگاه عمل تا دهد بر بعد مهلت یا اجل استعینو فی الحرف یا زنها من کریمن صالحن من اهلها اطلب درر اخی وست السدف وطلب الفن من ارباب الهرف ان رأيتم ناسهین انصفو بادر و تعلیم لا تستنکفو در دباغی گر خلق پوشید مرد خاجگی خاجرا. آن کم نکرد وقت دم آهنگرر پوشید دلق احتشام او نشد کم پیش خلق پس لباس کبر بیرون کنزتن ملبس زل پوش در آموختن علم آموزی طریقش قولی است حرفت آموزی طریقش فعلی است فقر خواهی آن به صحبت قایم است نه زبانت کار می آید، نه دست دانش آن را ستاند جان ز جان نه زراه دفتر و نه از زبان در دل سالک اگر هست آن رموز رمزدانی نیست سالک را هنوز تا دلش را شرح آن سازد زیا پس علم نشره بفرماید خدا که درون سینه شرحت داده ایم شرح اندرسینت بنه ایم. تو هنوز از خارجان را طالبی محلبی از دیگران چون حالبی چشمه شیر است در تو بی کنار تو چرا؟ میشیر جویی از تغار منفظی داری به بهر ای آب گیر ننگ دار از آب جستن از قدیر که علم نشره نشرحت هست باز چون شدی تو شرح جوو کدیه ساز در نگار در شرح دل در اندرون تا نیاید تانه لا تبسرون تفسیر و هو معكم یک سبد پرنان تو را بر فرق سر تو همه خواهی لب نان در بدر در سر خود پیچ هل خیره سری رو در دل زن چرا بر هر دری تا به زانوی میان آب جو غافل از خود زین و آن تو آب جو پیش آب و پس هم آب با مدد. چشمها ها را پیش صد دو خلف صد اسب زیر ران و فارس اسب جو چیست این گفت اسب لیکن اسب کو هی نه اسبستین تو پدید، گفت آره لیک خود اسبی که دید. مست آب و پیش روی اوست آن اندراب و خبر زاب روان. چون گوهر در بر گوید بر کو وان خیال چون صدف دیوار او. گفتن آن کو حجابش می شود ابر تاب آفتابش می شود بند چشم اوست هم چشم بدش عین رفع صد او گشته صدش بند گوش او شده هم هوش او هوش با حق دار ای مد حوش او در تفسیر قول مصطفی علیه السلام هوش را توضیح کردی بر جهاد می نیرزد تر رای آب هوش را می کشد هر بیخ خار آب حوشت چون رسد سوی سمار هین بزن آن شاخ بد را خو کنش آب دی این شاخ خوش را نو کنش هر دو سبزند این زمان آخر نگر کین شود باطل از آن روید سمر آب باغ این را حلال، آن را حرام. فرق را آخر ببینی و سلام. عدل چه بود آبده اشجار را. ظلم چه بود دادن خار را. عدل وضع نعمت در موضعش اش. نه به هر بیخی که باشد آبکش ظلم چه بود وضع در ای که نباشد جز بلا را منبعه. نعمت حق را به جان و عقل دی نه به طبع پرظهیر پرگره بار کن بیگار غم را برتند بر دل و جان کم نه آن جان کندند بر سر ایسان هاده تنگ بار خرس کیزه میزند در مرغزار سرمه را در گوش کردن شرط نیست کار دل را جستن از تن شرط نیست گردلی را ناز کن خاری مکش ورتنی شکر منوش و زهر چش زهر تن را نافع است و قند بد تن همون بهتر که باشد بی مدد هیزوم دوزخ تن تو کم کنش ور برویت حیزم رو برکنش ورنه همال هممال باشی حتب در دو عالم همچو جفته بوله از حتب بشناس شاخ صدره را گرچه هر دو سبز باشند ای فتا، اصل آن شاخ است هفتم آسمان اصل این شاخ است از نار و دخان هست مانندا به صورت پیش هست که غلط بین است چشم و کیش هست هست آن پیدا بپیش چشم دل جهد کن سوی دلا جهد مقل ور نداری پا به جنبان خیش را تا ببینی هر کم و هر بیش را.